کودت نفتی که برای چند دهه سبلها و سبلها مدیار دلار برایشون سنویه برد و تصداد بر اند بمنطبه این کودتا هم اسمش از خودش خیلی بزرگتره هم آثارش از خودش خیلی بیشتر بود خودش یه حادثه بزرگ خیلی پیچیده نبود در واقع در کودت های 28 مرداد دشمن پیروز نشد ما شکست خوردیم فرق میکنه که بگید دشمن پیروز شد در نتیجه ما شکست خوردیم یا بگید ما شکست خوردیم در نتیجه دشمن پیروز شد این دو تا به لحاظ تاریخی ماده تاریخی یه جور نوشته میشه اما دو تا پدید است یه وقت شما قوی هستید دشمن قوی تره وقت دشمن ضعیفه شما ضعیفترید اونی که در 28 مورداد اتفاق افتاد این دومی بود وقتی پیریز شد کودتا سالمانسیا بابر نمی کرد ما فکر نمی به این زودی به این آسانی به این ارزانی می آماده که داشتیم میلیون ها دلار پول خست کنیم چون می ارزید اما با یه رقم بسیار اندک شاید چنده هزار دلار نشده باشه ما فکر نمی‌کردیم ملتی که اون ثوابق تاریخی و مکتبی رو داره، ثوابق انقلابی و سیاسی رو داره و بعدم تو این چند سال انگلیسا و رژیم پهلوی رو ترقضیه نفت دماغشون رو به خاک مالیده یه مرتبه اینجور وابره و وابده شاه هم بابر نمی‌کرد برچون شاه فرار کرده بود رفته بود اروپا وقتی بهش گفتن خودتات انجام شد، محفظ شد، برگرد، باور نمی کرد. مرحوم پدر ما که از جوانان فعال نهضت اسلامی و ملی نفت بود در خراسان، یکی از سردمداران بود که اصلا بهشون گفت تابلوی نفت ایران و انگلیس رو در مشهد، من و چند نفر از دوستان که از فدایان اسلام بودن پایین کشیدیم تابلوی نفت ملی ایران رو ورد بالا و مسئولی که حالا وقتو اون خاطرات نشمن قبلا اشاره کردم یک کتابی هم از خودشون هست دوستان میتونم ببینم یک گزارش تلخ اما معناداریشون میداد از روز 28 مردادشون میگه بچشان 28 مرداد ما نمیدونستیم این اتفاقی قرار میفته کودتا است و بعد از این دیگه تمام میشه همه چی ما باور نمیکردیم چون هم انگلیس رو و هم رژیم پهلوی رو مردم گوششیده بودن ولی اختلافات داخلی، ضعف رسانه‌ای، فقدان سازماندهی‌های قوی و بسیج انقلابی، ضعف تحلیل سیاسی از مسائل، اینا باعث شد که یه مرتبه جبهه خودی، این خاکی زدن بباشه. چون گفت روزی که ما تو مشهد دیدیم دیگه همه دل شده بودیم با هم اختلافی و نمیدونستیم با چیکار کرد از لب پیروزی ما برگشتیم به شکست یه جمعیت چند صد نفره فاهش لاطلوتا قرا شما کشابه یه از رکن دو ارتش اینها چند صد نفره ریختن تو خیابون و کل چشم ما همین جمع و بیشتر ازی رو در یک دو سال گذشته نهزت نفت می آمدن و لطپالش رو می کردن مردم بسیارت نمی کردن بیان ولی اون روز اونا کم بودن، کسی نبودن این طرف دیگه کسی نیومد. تردید، یس، شک، اختلاف، بی انگیزگی ندانستن امق خطری که داره جرومیات اینا خیلی درشت رسانهای اون موقع هم نقش فوق العاده مهمی داشتند حالا شما دوستان فارسی هنر و رسانه هستید تا بدونید. اون زمان از مقالات روزنامه‌ها، تیترها، کاریکاتورها اینا در همون دوره خود به سبب اون دوران خیلی نقش داشت. در که مردم جای دوست و دشمن رو عوض بگیرن. دشمن اصلی و دشمن فرعی رو خلط کنند. خیلی نقش داشت. ببینید رسانه و هنر از خود واقعیت امروز مهم‌تره اینکه این چه اتفاقی افتاده یک طرف اینکه تو ذهن شما چه اتفاقی بیفته یک طرف بلکه این مهم‌تره ممکنه کل ماجرا رو جای فلسفی رو جلاد و شهید رو عوض کنه به خیلی اوقات کرده در جنگ صفین یه تاکتیک ای فریب افکار عمومی جبهه دشمن رو پیوز کرد یه دروغی که به شکل راست بزک شده بود قضیه قرآن سرنهی رفتن و آقا مصنون مصنون رو بکشه و فلان رو منی گفتن که خب چی جنگ رو انداخته و چرا سر قضیه کربلا دشمن مهمتر از کمکیرهایی که زد اون جنگ رسانهی بود که رو انداخته که یه نظر کردن اگر فتنه‌ی حسین بخوابه، ما به شکرانه‌ی اون مسجد می‌سازیم، به ساختن. چرا حسین ابن علی هر فرصتی پیش میامد ولو برای ده نفر صحبت می‌کرد. همین طبعیل می‌کرد که ما کیم؟ اینا کی ما چی می‌گیم؟ اینا چی می‌گن؟ این اینقدر سنگین بود که ما حسین رو خارجی خوارجی، خوارج یعنی کسانی که خروج کردند. یعنی برنداز، برنداز حکومت اسلامی معرفی کرده. یزیری که حاکم شرعی حاکم حکومت اسلامیش در مدینه پیخمبر یک آدم که مسجد کرده آمده نماز جمعه صبح امام, جمعه، امام جماعته. تو مهره مسجد قیم میکنه. امام جماعتش. بعد بهش چهر رکعت میخونه نماز صبح. میگن آقا چه کار می‌کنی؟ چهار رکته مصد بود حاکم اسلامی مدینه و امام جماعت و جمعه‌ش گفت الان حالم خوبه، من نمیدم کم خوندم، زیاد خوندم یک کم خوندم بگید الان حالم خوبه، حتی بخوایید میتونم بخونم نماز چهار رکت خونم از صبح دشمن با دروغ‌های رسانه‌ایی که گفت از امیر المومنین امام هستان سیدو تا آخر همین بود، تماماً جنگ راست دروغ، وقت دست دروغ بازه. دروغ دهه دست راست دست حقیقت بسته است بلاحاظ محتوا نمیتونی خلاف واقع بگی اما بلاحاظ فرم چی؟ بلاحاظ فرم و هنر بلاحاظ ظرفم دست ما بسته است املا چند تا سند آوردم خدمتون خواهش میکنم بینا دقت بکنین تحلیل نمیکنم فقط من این را براتون قراعت میکنم شما یک قضیه تاریخی رو به خصوص مسئله به این مهمه که به سرنوشت یک ملت مربوطه اگر بخواید هنرمندانه تصویر کنید بذ اولاً تاریخ رو بدونید شما نمیتونید راجع نقش آمریکا در ایران و منطقه بحثی بکنید بدون که تاریخ خود آمریکا و هایی که کرده و اتفاقاتی که از چندین دهه قبل از کودتای 28 مرداد تو ایران اتفاق افتاد جنگ جهانی اول دوم کشف نفت کودتای انگلیس ها رضاخان پهلوی آوردن ها و های داخلی و اتفاقات کفت افت، اینا همه با هم مربوطه. مثلا اشغال عراق و اشغال ایران، این دو رو باید با هم دید. باید بدونی اینا همزمان اتفاق افتاده چون طوری که این دو کارو کرده، هر دو رو با هم کرده، او یه نفر بود. او انگلیس انگلیس بود. انگلستان همزمان تو منطقه نفت کشف کرده. ایران و عراق رو اشغال کرده، کودتا کرده، اشغال کرده، جنگ جهانی بوده. رژیم اینا رو عوض کرده و چندین کشور دیگر. رو بعدم نیرو کم آورد و رفته، آدماشو گذاشته. شما سیل اتفاقات تاریخی رو هم در طول هم هم در عرض هم هر دوشو باید بدونه. و تو زندگی آمریکا بین از اون ور اومده کلوتا کدا افتاده. این نبوده که دیگه. این خروج شه تا شه، این مو تشویق نهایی مو عکس آخره. و هشتاد امتیاز دارسی رو که قارت نفت ایران بود، ها برای ایران تعمیل کردن، که فهمیدن نفت است. چون خود تو این شاشه دولت بخشه مهم میشه مسئله نفت مربوط شد البته اهداف دیگه‌ای هم داشت ولی یعنی دعواسره ملی شدن نفت و اینا بود دیگه لاحقاً ظاهرش هنوز نفت در ایران یعنی مسجد سلیمان به صورت نکرده بود دیده نشده بود اینا ای قرارداد بشتن چو چون خب چون میدونوشن اینجا چه خبره کیس دیگه حکومت ایران و عمردون خبر نداشتن هفت سال بعد نفت در مسجد سلیمان شروع میشه به استخراج یک سال بعد سری شرکت نفت انگلیس در ایران تثبیت میشه و قرار قراردادای درازمدت میبنده، تارت رو قانونی میکنه. حالا دلت کنید، دو سال بعد چرچیل دستور میده کل نافگان دریایی انگلیس سختشون زخال سنگه بکنه نفت. اصلا کل ساختار ارتش استعماری در انگلیس کل عوض شد. اتکای ارتشون به نفت ایران بود. چون یه وقت خوف که ما اگر نفت ایران و خاک ایران مال ما نبود اشغال نکرده بودیم، قارتشون نکرده بودیم، ما نه جنگ اول نه جنگ دوم میبینم، ما نمیتونستیم پیش بشیم، ما هر دفعه می‌وختی. کل نیروی تانک و زرهی ما در آسیا و آفریقا با اتکا به نفت ایران و یکی دو کشور دیگه بود. اصلا سرنوشت جهان رو ما با نفت و منابع ایران عوض کردیم. اکی 1288 90 هروز اواخر قاجاره و بعد اولی که رضا رو برمی‌آره سخت نافگان دریایی بریتانیا در کل جهان از زغال سنگ و اینا شد نفت چون موقع بزرگترین نیری دریایی جهان هم اونیدشتن بلا فاصل پارشگاه آبادان رو آمدن شروع کردن به ساختن دو سال بعد به لحاظ ظاهرا قانونی و هو بین الملل فرمالیته سامدار اصلی و صاحب اصلی نفت ایران شدن وقتی کودتا کردند دو رضا آوردن آوردند و ایران اشغال شد و رضا آوردن آوردند سر کار یه چند سال بعد به رضا خان گفتم اون قرارداد دارچئی رو برو ابطال کن که بگی یعنی ذلت انگلیسی بخواد ایران مستقل بشه از یه نمایشه بده و اجازه بده اجازه چند ماه بعد قرارداد دیگه ای رو امضا کردن از اون قرارداد خیلی بهتر حلوز من میبینم بعد جزئی آدمای که عوامن خودشو به عوام میزنن میگه آقا رضا شاه اومد پلیس و مال انگلیس بود اونهم کرد اومد قرارداد دارچئی رو دارچئی رو لغو کرد خب بعدش با گرفت انگلستان تا اون موقعی که جنوب ایران دستش بود پلیس جنوب داشت بعد کودتان که کل ایران رو گرفت پلیس جنوبو منحل کرد اما کل ایران ایرانو گرفت کل کشور گرفت دیگه بعد میگه گفت پلیس جنوب مال انگلیس‌ها بود منحل خود رضاخان مال انگلیس‌هاست قضيه آتش همین که قضيه نفت همینطور طور مسئله مختلف فا قبلش به بعضی اشقایر کار می‌کرد انگلیس علی دولت مرکزی وقتی دولت مرکزی رو گرفت امو اشعار رو سرکوب کرد نابودشون کرد درست توضیح خواهم یعنی اول دولت قاجار راه ازش امتیاز میگرفتن بده بستون بود بعد که دیگه کودتا شد و دولت قاجار که باج میداد به انگلیس و بوسا. بعد دیگه علوی رو که کلا نابود شد بعدم گفت ارتش ما داریم ایران رو ترک میبونه مثل کشوری که میگفت استقلال بهش میدیم استقلال نمیدید میگفت ارتش تموشه بود تو جنگ جهانی دوم میدید جنگ جهانی دوم اروپا کلا نابود شد اصلا آمریکا از جنگ جهانی دوم به بعد شد قور جهان ابرقدرت شد هم شد منترین کشور جهان هم منترین برای که آمریکا تو جنگ بین الملل اول دوم اصلا هیچ جربی نخورد اول دنیا بود جنگ تو اروپا بود و بعد از اروپا تو کل جهان پخش تو قوها راه دیگه خونین ترین قاره جهان اروپا شد وحشی ترین قاره اروپا لازم انسانی اینا فقط ظرف سی سال با فاصله 6 سال دو تا جنگ خودشون نزدیک 100 میلیون از همدیگه رو کشتن باز بشه یعنی وحشی ترین خشن ترین قاره جهان اروپا شد همیارانه هم حجی جنک تو دو دولت روسیه شرکت کشاورزی اروپایی اومد گذاشت امتیاز جدید نفت دو سال بعد اسم شرکت نفت هم عوض شد چند سال بعد مذاکرات جدیدی شروع شد برای که منابع دیگه ای در ایران پیدا شده بود و باید میآمادن خیمه میزدن مذاکرات نفتی شرکت های شل چه, چه, چه شرکت های انگلیسی آمریکایی و اروپایی 34 تا اومدن بغداد سر لاشه دعوا دارن چلو چند سال بعدم روسا میان کمونیست که امتیاز نفتی بخانن اونها با جراحی که الان نمیخوام روش بشم قوام و انگلیسی‌ها و دربار تقریباً کله شوروی رو برداشتن نامه نفتی رو امضا کردن آتش شوروی از ایران رفت بیرون بعد گفتن باید بره مجلس مجلس هم که خب دست اون انگلیس بود معنی بود که امضا نمیکنه 1928 مذاکرات شروع میشه برای قراردادهای بعدی و نخست وزیر امضا میکنه مجلس افتاده در جریانای ملی مذهبی کاشانی مصدق اینا اینا مجلس حاضر نمیشه امضا رو کنه قرارداد الهاقی رو امضا نمی کنه چند ماه بعد ملیون مسققق رو اینا تحصول میکنن تو شاه. بهمن 28 مجلس 16 هم میاد که این مجلس دیگه اقلابیه و رئیس مجلس میشه آیتولا کشانی مجلس افتتاح میشه چند ماه بعد مجلس رسماً اعلام میکنه ما قرارداد الهاقی نفر رو قبول نداریم و کل قرار دادای نفت باید بیاد تو این مجلس و همه رو ما باید بازنگری کنیم باید منافع ملت ایران منموش کجاست الان که همهش من نقمان انگلیس هست خورداد 1329 این مخالفت رو نفت میکنه. همون ما شاه رزمارا رو نخص وزیر میکنه و رزمارا میاد برای که ازیه نفت رو نظر جلو بره یکی دون چند ماه بعد دوباره مذاکرات با از طریق رزمارا با انگلیس ها با نواب صفوی و میلیون مذبی ها اطلا کارشانی میکنن به شوه در از مراک نمیدونره میرانیم بفروشی. خلاف قانون خلاف مجلسه خلاف اسلام خلاف قانون خصصی همون مشروطه است این کار و رو نبدده اطلاع نمیکنه فدایان اسلام از رو میزنن. از این طرف فشار انگلیس و در زیاد میشه امریکایی هم سکشون را پیدا میشه. به خواست کاشانی و مصدق کارگران سر طف اعتتصااب میکنن فشار میاره آقای کاشانی جمعیت میاد نفیدایان اسلام و کاشانی و طرفداران مشروطه میان تو خیامون و شاه رو مجبور میکنن که بپذیره که مصدق خصوصی بشه سی تا مجلس تشکیل میشه به ریاست آقای کاشانی و این جریان انقلابی اومدن قانون ملی شدن نفت رو مجلس تصویب میکنه برای اولین بار بزرگترین ضربه به شاه و به انگلیس شاه رو مجبور میکنن که امضا کنه و تحت فشار قرارش میدن انگلستان دو ماه بعد میره در دادگاه اعلی و سازمان ملل شورای امنیت علیه ایران شکایت می‌کنه یعنی جای تلقک رو بدیکار حوض میشه جای شهید و جای اون شاکی او ما میشه متهم متهم خرداد 1330 مجلس اعلام میکنه باید برید شرکت نفت انگلیس رو و مصدق و مجلس شرکت نفت رو کنترلش به اوده می‌گیرن دقت کنید میخوام اتفاقاتی که الان سر ی و اینا افتاد ببینید همو دوباره تکرار شدن توی دیگه بازم بعدم هم همینا تکرار میشه وقتی که اول از وقت انگلیس رفت با کمک آمریکا و دادگاه لاهه و اینا فشار علیه ایران. از اون طرف وقتی که شرکت نفت انگلیس رو ایران رفت گرفت مصادره که گفت دیگه مال انگلیس نیست مال ایران. ناو جن... ناوهای جنگی انگلیس حرکت کردن به سمت آبادان. تحریم ایران شروع شد. هر تانکر نفت، کشی که میخواست بیاد از ایران نفت بخره، نافگان انگلیس کشتی‌هاشون رو مصادره می‌کرد و بازداشتشون میکرد. یعنی معاصره تحریم نفتی کامل اقتصادی. آمریکا به مان واسطه خوب پلیس خوب و پلیس بعد پلیس خوب آمریکا وارد صحنه میشه علنی معمولیت هریمن ماموریت استوکس مهر سی مصدق میره سازمان ملل مجلس اعلام میکنه باید کل کارمندان انگلیسی از ایران اخراج بشن و اخراج میشن آبان سی چرچیل مخصوصین میشه در انگلیس دوباره آمریکا اعلام میکنه ما برای که احتمال داره انگلیس دورش به سر برسه به ضعیف شده باشه ما بخبیم چاشو بگیریم با یک چهره مثبت اول اولین اقدام زبانی آمریکایی که ما از اشل چارترومن می‌خوایم بیان به ایران کمک اقتصادی بکنیم بدون انگلیسی‌ها رفتیم می‌خوایم بیان ایران همین منطقه تنگیسان و دشتستان اول دید 10 تا سال به این معنی که ما می‌خوایم بهتون آموزش بدیم که نخلساناتون آباد بشه نخلا شیوه‌ای مترقی آبادیه نخل اینا به این معنا بنا کارشناس ویژه ده مردم هم گفتن عجب خوشحال شد گفت عجب آدم خوبی هند 150 سال فقط اول تجارت کردن و ارتباط به نفوذ بعد ارتشش اومد ارتش کمپانی شرقی اومد به اسم دفاع از منافع کمپانی شرقی و بعد ارتش انگلیس گرفت ایران شما میدونید سر قضیه تنباکو که یه قرارداد بس ظاهرش تنباکو بود میدونید انگلیس او دوران که جمعیت ایران معلومش کلا چند میدون بوده صد هزار کارمند انگلیسی از هند و افریقا و خود انگلیسی آوردن تو ایران صد هزار اون موقع تا که اینا ما میخواین کمپانی‌های 0 دیشان مشاع مردم رو یهو دینگلیش یا ژوربه میخوایم رویتو بشن اینا حرفا داشتن بعد کردن تو شبای مختلف عرق خوری و دیسکو و فاحش خونه و اینا راه انداختن گفتم ما برای کارمندای خودمون بعد گفتن که خب حالا ایرانی‌ها هم هستن استفاده کنن در آخر گفتم اگه می‌خواید توی مراسم ما بیاین اولا ما مصننر رو نمی‌بینیم خانه خدای زرتشتی یهودی ماشینیه باشه مراسم اولجوری بعد گفتن که خب متقاضی مسلمان هم داریم برای خیلی دیگه می‌خوام یه حلول و بعد حجابتونو برداری و اینجا مشروع است بود و شما بخود گفتن یعنی کار فرنگی اقتصادی قارت اینا و نظامی 100 هزار یعنی یک ارتش 100 هزار فرنگی نظامی شیرازی مراجع در نجف اعلام جهاد کردن تحریم کردن تا بکون بعد بعضی اخوندای نفهم ما بهوشن فکراینده وابسته فراماسون پیدا کردن و اخوندا به محمد گفت کجای قران گفته تا بکون نکشین کو حدیثش اونم گفت که شما ماونای پیشرفت به تجارت جهانی و جهانی شدن ایران شدید سکه مارو نامه‌ای نوشت به شیرازی با آقا توجه هست این همین کار رو تو هند کردن من اونجا بوددم دیدم جلوشونگاهی نشید ظع سی چه سال دیگه ایران مستعمره کامل مثلهنده قیام کردن خب اینجا نلحت نف شما ببینید کار بزرگی شد دوباره مقابت کردن دوباره اعتما دادن که مصد بمونه جردن چپ کمونیست توده ها و اینا شروع کردن با که عواد شووروی اروسی کمونیستی بودن اما کاری که میکردن خش به نفع امریکا و انگلیس بود بانک جهانی رو فرستادن تو ایران شروع تحت تاتمانه قرارداد و حمایت از اقتصاد ایران و کمک به دولت مصدقونه با این عنوان آمد و تلهایی انداخت توای پد کرد که کاملا نرو بگیر صف کل کنسولگری های انگلیس در ایران تعطیل شد. بانک انگلیس در ایران تعطیل شد. گفتن کل انگلیسیان نظامی و غیر نظامی باید از ایران برم ایران. اختلافات داخلی بین مصدق کاشانی و دامن تمام من می‌خواستم وضعیت احداث رو که آمریکا چطور جرفیات رو علیه هم دیگه و علیه نهضت فعال کرد و لحظه آخر تیر خلاص کودتا بود دیگه خب بانک جهانی میاد بین مصدق و নবাব کشانی اختلافات تشدید شده کشتی کش کشتی اروپایی کشتی ایتالیایی میاد که از ایران نفت ببره بریتانیا ارتش انگلستان و کشتی ایتالیایی رو هم توقیف میکنه میگه ایران مال ماست کسی نمی‌تونه بدون اجازه ما از ایران نفت چیزی ببره قاضی سیتیر میشه فشار میارن مصداق به صفه میکنه سیتیر قیام میشه کاشانین کفر میپوشه میاد تو خیابون و میگه آمریکا و انگلیس همه مثل <سؤال> همه دوباره مصدق برمیگرده کاشالی به مجلس هفتمه روابط دیپلماتیک و سیاسی ایران و انگلیس به طور کامل درد میشه اعلام میکنه کل اعضای انگلیس ایرانو تاق کنن این همه با فاصله های چند هفته و چند ماه دوباره بانک جهانی رو آمریکا میفرشته که الان ایران تحریم تحت فشار انگلیس تحریم است. الان ایران نیاز داره بریک چون چون شامپینشو قرارداد چرب ببندید که برای 50 سال آینده بتونیم ایران رو استثمار کنیم درگیری‌های داخلی عشایری تو مناطق بختیاری جاهای مختلف ایران انگلیس و آمریکا دارن تمدن میزنن. اگر شما واقعیت رو بدونی تحریم درست نوشته باشی، واقعیت با واقعیت یکیه هر چند مهم‌تر از اتفاقی که بیرون افتاده اون گزارشی است که شما از اون اتفاق ثبت می‌کنی و به دیگران می دی. الان هم الان این انقلاب جلو چشم ما اتفاق افتاد ما شاه رو دیدیم رجوی پنهیو رو دیدیم ما رو دیدیم منافقین و گروه ها و رو گروها کمیل دموکراتو ما دیدیم نا تو در 64 چه نسل کرد شده میاد یه گزارش 100 درصد خلاف واقع میگن دو تا قرائت یک قرائت حسین از کربلا قرائت یزید اما دو تا قرائت داریم میکنم. نسلی که تربیت شده از بچه ساله تا ساله که امام میگفت من برای خودم نقش مستقلی قائل نیستم بعد به اونا به مردم گفت برای شما هم نقش مستقلی قائل هستم ما و شما بودیم خدا نبود ذلیل بودید روز تولد حمشاو و فراو همین بچش ادگاه شای بچیگرشون روز تولد اینا همه ما رو بزور می‌بردن ما بچه مردم بودیم ما رفتیم پله که جشن می‌گرفتیم که به دنیا اومده بعد امام میگفت شما میگام مردمی نیستی که یک پلیس مافنگی تریاکی با یه باطو میاد تو بازار میگفت جشن تولد شاو و ریا با تعطیل کنه همتون میترسیدن حالا چه شده یه بچه یک تازه زبون باز کرده پیر تو پیرمرد پیزنی که مختزل تو بیمارستان میگه ببرش اونم بر آمریکا این ترس شما چی چیه منم که یک پیر پیرمرد یلاغبا بودم که اگه 100 بار میتونستم منو نیست کنم چرا نکردم من و شما بودیم خبری نبود ولی خدا که اومد وسط گفتیم خدا گفتیم الله ثم و پاش وایستادید دیدید چقدر قوی شدید دیگه از هیچ کس از شما میترسن شما میرید جلو اونا عقب اینا ما تو ای جنگ انقلاب صحنه های زیبا هنری ترین صحنه های تاریخ بشه. هیف این موبایل ها اون موقع نبود. اینا فیلم هنوز دارن فیلم میسازن برای جنگ بین اول دوم. هنوز دارن فیلم میسازن. جنگ هایی که این قهرمانیات توش نبود. این فداکاری ها نبود. دو طرفش ظالم بودن، جنایتکار بودن. بعد ما تصاویری که خودمون دیدیم ولی بچهای نسل بعد تاریخ می کنه، اینا باز باور ما ذکر مصیبت کنایم این بحث کوچیک است، بیشتر داد الان نشراط فصلی دیگه یا اینجای جای دیگه از میگم چون مهم این سناریو خیلی مهمه بود رفتم این رو بردم همین جلسه کردم که نش بگم و ذکر مصیبت بکنم جوانان 15 ساله تا پیرمرد هم اول انقلاب هم تا همین الان برگزار شدم خیلیم پروتکل من 14 سالم بود, تو تو بود و تو زندان تو بازداشتگاه یه بچه‌ای بود او از من بزرگتر بود و 16 بود. دستش زده بودن شکسته بودن روزه داشت شخصیت قوی مارو میزد و افسانه گفت فوش یا فش بده به خمینی یا میزنمت می گفت که پس بزنین منو منو فوش نمیدم منو بزنین بعد گفت اینا گفتم دیگه حالا یکی که ایر ما رو بزنین بعد ای افشله آمد تو آقا در گوشم یواشکی یک فوش بده Khomeini فوشم گفت که چه فوشی بدم گفت یه فوش در گوش خودم به Khomeini بده یه تعوذ بده برین هر کیم رد میشد مش گفتم زن یکی بزنم اینا مثلا طرف چای داش میورد یه لگد به ما زد می گفتم نه اون یکی نه اون یکی باشه کلا اینا غیر از کتکای دیگه فوشم میدادن بعد یه سربازم بود مسئول نظافت بود اومد جارو داد دست ما گفت||بله رو با جارو کنید زندان گفتم من فقط من جارو میکنم کل زندان رو جارو کردم اینقدر تمیز شد که دلم نمی اومد بلم دیگه من جدی میگم انقدر بنزالم زندان اون سیک وقتی تمیز نشد گفتم مثلا شک نکردم گفتم خب خوشم بیاد ما رو نگردانن هر روز باید اینجا رو تو جارو بکشیم این پرچش 16 ساله روزهدار تو زندان تو جنگ 40 کیلومتر اون ور عراق رفتیم جاده برداد زیادی رفتیم جلو مش بچه بچه‌ها افسودن همینا کلم هم بچا هم دیگه یه بچه 16 ساله که اصلا من نمی‌دونستم اصلا گردن گردانه چون دیگه شده بود خاطری هم نبود ما تو دشت میدویدیم ویدیم جلو بعدم با دویدیم ویدیم مقب چون خیلی رفته بودیم جلو بچا زیره بمباران شیمه شنگ... نه شنیله نشاسونه زیره بمباران جنگیدن بچه شون جنگی مقام... تا پیرمرز نظامی نبودن از پشت ما حالا چی میشه؟ گفتم که یک محادثه تا ده دقیقه دیگه ما رو می‌زنن چه میشه؟ مگر بخوای اصیل چی؟ گفتم من اش نمی‌گوشم. حالا شما ببینید بچه، هنوز محاسن درست نداشت. ایمانش چطور بود؟ شما شما مدیون این ایمان و این خونین. شما موقع نبودید نماز وظیفه نداشتید ولی الان که هستید. یک کم که گذشت گفت که تو این 10 دقیقه یک نمایشی بدم که خدا کیف کنه. و تازه بود در دقیقه شید شد چند بار من بهش گفتم برو اقا اینجا اگه مجروشی من نمیتونم ببرم اینجا هیچ کسی نیست ما مال نفره گفت نه من نمیرم یه بار دعواش کردم گفتم برو واییناشا اینجا من الان مخم بره میشه جوی موندن اصلا من ما با ناوال باشیم یا با هم میریم با هم نمایش دار. با و نمایش دادم بعدش به سبزی داشت از تو بادگیرش دود بیرون هم بود آمدم و که بعد یه بچه دیگه تو همین سلین تو عملیات بدر، 4 اردیبهشت که برونش شهید شد. این مجروح شده بود، دو سه بار ترکش خورد بچیه، همین روزی افتاده بود رنگ سفید، نمیتونست حرف بزنه، انگار گلوش رفته بود. چشمش نمیتوس باتی. من دو سه بار گفتم که برادر چیزی سنام میاد میبرن. اول علی کیاسم چیزی نبود ما. عقبی در کار نبود. بود و نزار و مدام محو به ما هلیکوپترش و هم ما از میگرفتیم آب نبود تو آبی که جنازه های عراقی بود ما از همون آب میخوردیم و دیگه هیچی برای خوردن نداشتیم چون عقب نمیتونستن کمک ببرن رفتو دیگه تا بچه از تو روستای اونها اجل گاوا نون ورشود اونای خوشک کپک زده آورد بوشت خاطرزار پنجمه روز گفت که از دارید میافتید بخورید که تا ببینیم ببینم شده گفتم الان می می می می می می خونم می شد اون گفت که می می می می می می می می می می می می می می می می می می می خودت می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می تانکا میاد، که خواب ایده. ولی لگد محکم می‌زدیم. خسته بودیم، 38 ساعت نخوابیده بودیم. میدان گفت چرا میزنیم آقا تانکا دارم میاد، پاشو بزن. گفت که هر وقت به 50 متر رسیدن منو می‌دار. به متری منو می‌دار. واقعا نه به متری متر میان بالات آخربیا ما وقتی شهید شد، 17 داش شد. با هم بودیم، شد، من به ای بگم، این بزرگی که امام اسلام اجازه کرد. کربله 4 من شب عملیات رسیدم منطقه ایشون توی تیم نفوذی نیچو از اون تیم قواصا بود اینا رو شما به هم تاریخ گذشته آمریکا کربلتشور آمریکا به سازمان منافقین نقش اصلی داشتن در لو رفتنش و شهید شدنی بچا این سنا بچار رفتن به سجده بچای قواص دما اولا تو آموزش میدونید بچار ولی خودشون قاپ کرده بودن شبا می رفتن تو آب سرد شبوجا زمستون آموزش قواسی و نبرد آرتیزانی و چه چوجچه بعد می اومدن توی قبر‌هاشون بچه‌ها می رفتن تو قبری که خودشون خودشون کنده بودن مراسم شب خودان ارگان می‌خوندن اینا بعضیشون تو هم حالت سجده فانوس بالای سرش تو قبر خوابش بوده یعنی این آماده اومدی قتیبه شهادت یار ما گفتم که چجوری این عملیا چی میشه آرام نه که ادا در بیاره گفت که ما خطو کنیم ولی ما رو می‌ذارن ما شهید میشیم. ولی خاتو مشکین که پشت سر ما بیان انشالله جزیره رو می‌گیرن به همین آرامی گفتم اخوی ما حسین گفتم خواب دیدی تو شهید میشه. گفت که من خودمم خواب دیدم من امشب شهید می‌شم بعد به من گفت یه حدیثی آقا چی چیزی راجع به شهادت بگو گفت من خوابستم زینب باشه دارم من جلو ما قاعدیشی گفت فر که شهید گناهانش ببخشه میشه خیلی ولی شوخم بود گفت گفت یه حدیثایی نیست که شما اخونا برای شب عملیات ساختین با شوخی گفتم نه بابا یه حدیث ولله اونم گفتن همه گناه ها بخشیده میشه گفتم یه بعد نفسی کشید گفت همین باشه این ها رفتن به سجده یک دو بیست دقیقه بعضی‌ها حنو بسته بودند بعد بعدش هم شوخی مشق بازی بعضی دیریو تضرع سجده بعد بران شدن با هم خدا افزی منتمار بودم می گفتن که هر امشب شهید شد که باید شفاعت کنه از بقیه یادش نره میره پیش پیامبر اکرم شفاعت کنه هر کیم زندمون باید قول بده تا وقتی تو دنیاست همین مسیر رو ادامه بده به ما به به ما خلد کنه اینو هم دیگر روسی با این تعهد بعد ایستتون ستون را افتاد گفت لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک رفتن آی نیا و باطلاقا من تو سرمون کنارم بود بهش گفتم که من من همی داری می بینی دیگه آخری بار داری می خوب نگشم آماده مطلق برای رفتن بودن حسنگو عمدا در لشکر گفتن یک ماموریتی نمیتونیم چیزی بگیم ولی احتمال برگشتن باید احتمال رو به احتمال برگشتن حساب نکنید هر کی اومده است که فقط بره و برنامه بیاد چند صد نفر دفته نه بون من عزم اینه که شما روزی نبودید شما اون وظیفه رو بود اما الان تمام اون خونا به گردن شماست اگر بتونید کاری بکنید و نکنید بگذارید جای حابل و قابل عوض کنید بگذارید آمریکای جنایت کار که تو 200 سال خوردی از عمرش رو در 200 خورده جنگ تو دنیا رو انداخته همین آن الانم هم هر جنگ زیر سریناست و جنایت شروع شد یک جزوهی داره کتابی داره روجر گارودی می دن رهبر حزب کمونیست فرانسه بود فقط مسلمان شد ف رهبر کمونیست فرانسه کمونیست فرانسه رهبر های اروپا به غرب بودنش این رهبر حزب کمونیست فرانسه بود اسمش روجر گارودی اسمش بود رجا رو کرد یا رجا تازه غزی همین چیز هولوکاست هم دوست سوال مطرح کرد حکومت گرفتنشو باختن زندان اوتگو و هم قسمه دونعرف یه کتابی داره که راجع به آمریکا خیلی مختصره من خواهش می‌کنم الان وزینام اومد اون رو ببینید خیلی قشنگ اصلا ریشه های فساد این آمریکا ریشه در فساد و چرکاب خون بود میوهش میوه پوسیده و فاسیده و خونه اگر در تمام مقاطع آمریکا حمله کرد امام دفاع کرد هیچ جنگی نهشون نکردیم نه جنگ با سردافت نه جنگ با تروریستا هیچو همیشه دفاع کرد ولوم وقت شما رو اینقدر فیلم ساختن که تو دنیا هر جا اسم اسلام بیاری, بیاری, بیاری اینا تولوریست آدم پووشن جمیتکارن. این معنیشی نبود که بچههایی که انقلاب کردن و جنگیدن از اینا شکست خوردن این معنیشی بود که بچه های هنرمن و رسانه ای ما از رسانه های دشمن شکست خوردن به کلید شکست شما اگر شکست بخورید فجیعی تر از شکستگه اگه اون موقع بچه ها می خوردن اونا خوردن کلاب خوردن و دست شکسته فرش نداند بهما بعدنشت تکی بود گفتم من نمیخوام برم آقا حالا نوبت شماست با قلمتون با خلاقیت با هنر تو عرصه‌های مختلف از این خون‌های پاک دفاع کنیم. عمر از لجن دفاع نکنید و السلام علیکم و رحمت الله